کلش پیدا میشه دیگه بهمون ندارم برش بیارم. بهش باید غللت دییخاد بکنی برو بکن. مرک تو که تحویل بده دیگه دستش به پول نمیرسه هم اینو خوب میدونونه. تو هم تا میتونی دست به سرش کن. تاکی آخرش که؟ ترسم یهو قااطی کنه بر آگاهی ازش بعید نیست. حالا فعلا یه خورده دیگه کشش بده شش بدم که چی بشه من که دورا بیشتر ندارم که باید برم خودم معرفی کنم دی که بذارم برم من فکر رامو کردم تو این که در روز بهدی میگیرم اون میرم چون؟ هر ایچ درد رو دفعه نمی سر گرفتار می شید. کار کنم صادی؟ چاری ندارم. به اونها فکر کردی. ناره... اتفاقا به اونم فکر کردم خب کاری کنم که دیگه منتظر من نباشه به سراغ زندگیشه میکنم که ادام کنم آره صادق. الان هم که پول تو دست و بادم هست بلیت میگیرم و میرم باشه حالا آره که حرف قبول نمی کنی من یه رفیق دارم تو آجان صحب یه تو بده به من من میرم برات بلیت میگیرم خوبه؟ خیلی پاسم بگیری من نتونم برم نه من خودم بلیت میگیرم سارا برم از اومده اوکی okay. بگارت تو تاین تکلیف داد کو جلوی کارمون رو چی کار چیکار میتونم بکنم؟ قراردادم با بلغشم پیدا نکردم. خودت چرا پیدا نیست؟ تلفوناتو چرا جواب نمیدی؟ این شاکی خیلی. میگم شلوغه کار دارم. باید همه رو توضیح بدم. حتی دستم می چند روز مرخصی بگیرم. تو این شرایط با این رفتار تو رامین شک کرده. چه شکی؟ حق بده بهش. وقتی بدون اطلاع تو من از حساب برمیداری طبیعیه که انتباحد از ببینم آره آقا من بهش گفتم بهش گفتم پول احتیاج دارم ولی اون اصلا اهمیتی به من نداد برش آره تو وضعیت رو میدونی تو این شرایط 50 من اصلا پول کمی نیست آره آقا من برنامه رو آوردم اینجا الانم که کارو غلطا گفته دارم چی داره خوب پیش میره به قول خودت یعنی من حق ندارم یه بخشی دستمزدمو بگیرم نه باید راضیش میکردی بعد برمیداشتی اصلا این پول بزنی رو سهمم بالاخره من اینجا سهامدارم یا ندارم بابا تو چرا متوجه نمیشی من چی میگم کسی مون کرد تو نیست. میگم راهشین نبود. منم میگم این پول الان میخواستم اگه شما شرایط منو درک نمیکنید و بهم اعتماد ندارید، پس من دلیلی نمی‌بینم برای ادامه کار. فهمیدی؟ مگه تو به ما اعتماد داری که ما به تو اعتماد داشته باشیم؟ ندارم. اص چطوری همین کار کارا رو سپردن به شما؟ ها؟ اگه واقعا این چرا نمی‌کشه اتفاقی برات افتاده؟ بابا چه اتفاقی افتاده؟ شما باید بگین. گفتم که هیچ مشکلی واسه من پیش نیومده واسه یکی از دوستام یه اتفاقی افتاده. کدوم دوستت؟ تو مگه بعد همه دوستای منو بشناس؟ بگو باهاش آشنا میشم. یه مشکلی برای یکی از دوستای من پیش اومده خصوصیه نمیخواد کسی بفهمه. داری دروغ میگی اصلاً دوستی در کار نیست. آره من دروغ میگم اصلاً خوبه؟ آره چرا نمی‌گی چیه؟ من میخوام کمکت کنم. من اصلاً کمک نمیخوا. مگه من کمک خواستم از تو؟ چرا اینجوری میکنی؟ چجوری؟ وقتی من کمک کمک نمیخوام انقدر باید تو به من گیر بدی؟ تو هره رونا مگه قرار نبود تمومش کنیم چیو خوی تو نزم دمون را درن چیو بعد تموم گردم مگه قرار نبود شکایتو تو پس بگیری شما خیلی پار من اصلا شما رو نمیشنستم این همه بهت پول دادم. حالا دیگه منو رو نمیشتستی؟ اون مدرکت من اصلا که از پول گرفتم آه. پس کلن میخوایی منکر همین چیز باشی تو چی هستی؟ حق و حقوقم چه حق حقوقی؟ من توی نوشتن اون برنامه سخت داشتم خیلی پستی تو که گفتی آراشون برنامه رو تنهای نوشته آقای کامیار شما که به من میگی پست اول ببین خودت چیکارا کردی بعد به دیگر این حرفو بزن. من هدفم مشخصه میدونم چی کار دارم میکنم ما یه توافقی با هم دیگه کردیم تا قرون آخرش هم من به شما پرداخت کردم اما شما چی کار کردی؟ ها دیزره همه چیز میخوای برم پیش رونا بهش بگم همه اینا نقشه تو بود میخوای بهش بگم رفتی سراغ هم کلاسیای سابقه اونو آرشو رسیدی به من؟ میخوای بهش بگم وقتی فهمیدی من دو سه ماه برای آرش کار کردم ازم خواستی بگم منم تو نوشتن برنامه سهم داشتم و کاسو کوزه آرش رو به هم بزنم یا اصلا چطور به رونا بگم ازم خواستی یه جوری فیلم بازی کنم که انگار بین من و آرش یه چیزی بوده تا از چشش بیفته میخوای بهش بگم تو حالا چقدر به این پول دادی سب کن سب کن مگه نگفتی دلیل و مدرک ندارم که بهت پول دادم. وقتی چیزی به نفعت نباشه خوب بلدی چی بگی یا چی کار کنی خیلی خوب، خیلی روشن بمبین بگون از حق و, حق و چی میخوای تو چی فکر می‌کنی؟ من خیلی بیشتر از کاری که کردی بهت پول دادم تو دب بکردی تو هم خیلی بیشتر از اون چیزی که من فکر می‌کردم پول داری چرا پتی به تو داره پولی که به من دادی پول خوردته بیشتر می‌خوام. اصلا؟ حالا شدید دیویستان هموقع پول آن بدی شقیعتمون پس میگیرم نیازینی سلام جواب بدی حتما میری فکراتو میکنی حتما هم نظرت عوض میشه چون رونا رو خیلی دوست داری من ازی پولا بکس میمیم باستش بعد این اتفاقا من خیلی سعی کردم که نظم و ترتیب اینجا رو حفظ کنم تا مشتری عدد دست نرم اسفاین حساب مشکل خاصی وجود نداره بالا مشکل که الان بین نظمی و عدم مدیریت کارگره است یه نفر باید باشه که حتما مجموعه رو مدیریت کنه بسا الان آقو مرتزا هر وقت دلش بخواد میاد هر وقت دلش بخواد میره و به هر بهونه کار ول میکنه میره خب ایشون سرکارگره بقیه میبینن اینجوری از زیر کار در میره <تصفيق> به نظر من که شما حتما این تکلیف ماهی سر روشن بشه یه نفر تو اینجا رو مدیری از کنه با تسلطی که تو داری دخترم کسی رو بهتر از تو سراغ ندارم من که نمیتونم یه نفر باید باشه که ازش حرف شنبی داشته باشه وقتی من بگم مجبورن که حرف تو گوش بکنن فعلا. تا پونه بیاد وقتی اون بیاد میشینی با هم رای جنی میکنیم حرف میزنیم رو پیدا میکنیم تازه میتونیم ازش بخواییم که یه دو سه ماه اینجا رو مدیریت بکنه تا وضعیت اینجا سر سامونی بگیره تا به نظرم اول باید از بحرمی شکایت کنید اون کارم میذارم به احده خود پونه با وضعیت رویی که من دارم دیگه توان این کارها رو ندارم بل. داره. پس پیشنهاد من رو قبول میکنی شما بگین چشم یه خواهش دیگه هم ازت دارم چی؟ ازت میخوام که شماره سامان رو بهم هم بدی من باید بشینم راجب گذشته باش حرف بزنم شاید که کی گفته چینه ای از من دل داره ولی بفهمم که این چینه چیه چرا نیستی چرا نمی دی به خاطر اینکه به تماس میگرفتم تا پیداشون کنم، حفظ شدم دیگه. ببین دختر جا، من میدونم که شما هم یه دوست دارید. تو آگویی نفر. هنوز باها در تماسه نه ببین دختر من باید حتما ببینمش خب ببینم در گذشته چه اتفاقی افتاده من هیچی به ذهنم نمیری دارم دیو نمیشه. و مطمئنم کار اون نیست من خوب میشستمش ازت میخوام کماغم کنم کمکم کنی ببینه میشه نت از تو خود نت از من نترس ارس کمک کن ببینه میشه اون آدم سابق نیست کارها ها تو از خیلی عجیب شده فلو من یه چند وقتی متوجه شدم همش تو فکر اون ناراحت بکرم شاید بین شما مسئله پیش اومده. نه ما مشکلی نداشتیم. همه چی خوب بود. توی کار چی؟ کارم خیلی خوب داره پیش میره. اتفاقا آرش خیلی خوشحال بود بابت شرکت و هم نمیدونم چی شده که اونم دیگه واسه مهم نیست. آرش بر این کار خیلی زحمت کشیده. چطور براش مهم نیست برای همین میگم خیلی عوض شده من حتی یه مقداری پول بهش دادم گفتم خرج کار بکنه که نگرانی مالی نداشته باشه شما بارش پول داده بودی؟ بله چطور؟ توری شده؟ نه پرونا جان اگه چیزی هست حتما به من بگو اینجوری من نگران تر میشم آرش پولی توی شرکت نایی پول پولی شرکت از من گرفت پس چکارش کرده موضوع همینه چه مشکلی براش پیش اومده که پول لازم داره اونم این همه مگه به شما گفت که من چقدر بهش دادم مبلغش خیلی زیاد نبود از شرکت پول بردشت واسه چی؟ نمیدون چقدر بردوی پ پنجاه تا رو خانم من خیلی نگران آرشم یه مشکل بزرگی براش پیش اومده فقط نمیدونم چرا نه به شما حرفی میزنه نه به من؟ جور کردی؟ من که گفتم دو سه روز مهلت بده. منم گفتم وقت ندارم، پول لازمه. کامیا جون هر کی دوست داری صبر کن. ببین مرتضی من تا حالا هم هر چی کردم به خاطر رفاقتمون بوده، ولی دیگه نمیتونم، شرمنده. خدا فرست. فقط تا کامیا دو روز. فقط دو روز بهم وقت بده چفتو جورش میکنم. هرچی من میگم نره میگه بدوش، میگم پول لازمه، میفهمی چی میگم؟ فقط یه رو داره چی؟ چه که جوان مردی بده به من نمیتونم این کارو بکنم کنم چرا؟ رقمش خیلی بالاست من سلم نیست درد زر میشه هم واسه من هم واسه تو مثلا تو واسه چیم خیلی رو داشته باشی؟ اونش به تو ربطی نداره فکراتو بکن فقط بدون من دیگه بیشتر از این سب نبی قرار ما شما نباید بدونی چه اتفاقی تو افتاده؟ شما هزار بار از من پرسیدیم هم هزار بار گفتم هیچ چیز اتفاق خاصی نیفتاده. تو 50 میلیون از حساب شرکت پول برداشی اون وقت هیچ چه رو نیفتاده؟ رونا اینجا بوده؟ آره خب نگرانته. من نمیفهمم زندگی من به رونا چه ربطی داره؟ یعنی چیارش؟ شما قرارم هم ازدواج کنیم چطور توقع داری نگرانت نباشه؟ آرش تو بعدی این همه سال رونا رو پیدا کردی؟ چطور میتونی در موردش اینجوری حرف بزنی عصبی می با کارو شدم و؟ حالا تو نمیخواد نگران باشی از این و بحثا پیش میاد دیگه نمیخوای بگی مشکلت چیه؟ مشکلی ندارم این مسئله ساده از خودم حلش میکنم تو ماره چی فرض کردی؟ چه طرز حرف زدنه؟ این همه از مامان پول گرفتیم از حساب شرکت پول برداشت کردی م می مسئله ساده؟ تو فرض کن یه سرمایه گذاری می خود کجا سرمایه گذاری کنی؟ بعدم میگه باش ولی اینو بدون با مخفی کاری هیچ مشکلی حل نمیشه چالی از سامان که دیگه خبری نشد میخوام بدونی من تو هر شرایطی که باشم حواسم بهت هست ازت قافل نمیشه نمیخوام زندگی تو به باد بدی باشه کمم به فکر زندگی خودت باشه داشت فاجعه افتاده. چی چرا یه چیزی هست؟ مدتی تو فکری مادر. رونا، بیکوایش یه چیزی شده اما داد. میکنم آرش ازم دور شد. چرا همچین سعی میکنی؟ طرفترش عوض شده خیلی تلفونشو جواب نمیده شرکت نمیاد خب برای چی؟ نمیدونم بگم کنم یه مسئال مشکلاتی داره که به من نمیگه مثلا چه مسئلی؟ نمیدونم فقط میدونم یه می هست که من ازش بخبرم خب شاید نمیخواد با گفتنش تو رو ناراحت کنه از روی علاقه است تو به احساس اون نسبت به خودت که شک نداری داری نه پس این فکر نکن اون همه تلاشش رو کرده که از پدرت مهلت بگیره همه سعیش رو کرده که شرکت رو را ببد حالاگه یه چیزهایی به تو نمیگه مننشیم نیست که داره از تو دور میشه یا تو داری از دست میدیش هنوزم دوستش داری مگه نه؟ معلومه که دارم پس این فکر رو از سرت بیرون کن دیشب من شوخی شوخی موضوع خواستگاری رو پیش ببینم از دهن پدرت چیه خیلی احتمال داره که شرطش رو عوض کنه مخصوصا که شرکتتون داره خوب پیشرفت میکنه ممکنه حتی بگه زودتر بیان برای همین حواست باش کسی ها که سالها دوستش داشتی. به همی از دست سخاوتان را مملو از اطر آیات الهی کنید با اپلیکیشن ایران صدا تلاوت‌های ماندگار با صدای قاریان برجسته ترجمه فارسی به همراه آموزش همس روحانی و تجوید اپلیکیشن ایران صدا را از ایران صدا داتایا از من بیام ببینم بعد اتا کش دیدی دکترم دیدی بعد از این همه وقت مابا ما کجا هم دیگر داریم میبینید چرا بشمان بابا بشمان که آزارش به یه مورچم رسیدم آقا تو جایی که تو این دنیا تن کردم زدتش کجا چرا نمیگیرنش من خودم میخوام قصاصش کنم بابا دنبالشم پیداش میکنن خون پشمان پایمان نمیشه من مرد من دیگه چجوری زندگی کنم بابا؟ بابا چشونی تحمل کنیم بدون پشمان بعد این همه سال و اون همه مصیبت بچه دار شد که دلت آمد بچه من و سبینی و برادر من بچه من ندید و مورد شکری نکن دختره. خواستم بگم الان که دور همیم من خوام برگردم کجا بابا برمیگردم هتل کیش. راستش دیگه نمیتونم اینجا رو کنم فکر کنم چرا پجمون باید اینطوری بیاد بزن اینطوری بری واقعا نمیفهمم خیلی برام اتفاق سنگینی بود نمیتونم سرنوش بخواد با ام چی کنه نمیتونم واقعا تعمل کنم دیگه بعد چند سال کجا هم میکرد آشیم بیم. الو. بله. آره. بله چاش. همون جا. هسیا، <تصفيق> چاش. <جشم>. مامنونه. خدا. <تصفيق> آه. آشیم بچه، آش. آشیم بیم دوباره. آمی چنینیم. خدا. خدا, خدا من تو ساعتی دیگه پاربوز هم میخوام برمونم پیش من از اینجا یه سلام. جوام آقا بفرمایید. الان آقا واقعیتش یه کاری داشتم که باید انجامش شخصیه بر برمیگه راستش معلوم نیست ممکنه مدتی بمونم ام. پس اومدی برای خدافزی بله ولی شما هم گاری کاری با هم داشتیم جانم بریتت برای ساعت چند بعد از ظهر شما اگه کاری داریم بگی من میرم انجام میدم باید برم پیش یک کسی خودم تنهایی نمیتونم برم جلالم که متاسفانه دستش بنده تو چشم من میبرمتون خیلی ممنونم یکم تونتر برون چی رو باید ببینم کی؟ باطل پسرم خوب چکاوردی؟ نه پس پس چی اومد اینجا؟ شکی تو کار نیست حدس می زده مجرات با این پسر چیه؟ اگه به من بگید داستانت با آرش از چه قراره؟ شاید بی خیال و فروش خونه بشم فرش می گردونم به خودت این چیه کیف اون پسر آرش جواباردی دست تو چیکار میکنه؟ از یه جا پیداش کرد جایی جا که صاحبش دیگه مرده به قتل رسید قاتل قاتل جینی تو کجایی من اینجا دارم این زمین آها یه چند دیگه می‌رسیم باش زود بیا سوپریش مش خدا سلام آقای شریفی ما آقای شریفی سامار رسیده نزدیک که زمین ورزشه فرار کنه ولی میخوانی شما بریم من از دور حواسم بدتونست بس حواست باشه به منز این که دست بده شاره کردن به پلیس سعی یه جوری که تو مدتی که من دارم باش حرف میزنم پولیسم برس باشه چشمت باشه حواست باشه آه. چشمت باشه من کمار که تمام پیمش. من پا پیشونو نکشتم. تو کشتیش میوچدان. تو میگم من نکشتم. تو خودت گفتی رفتی اونجا انتقام بگیری. حالا میگی قاتلش سیستی؟ تو بهم تلافی کن اون اینکه بکشمش. چهیزو ای بهطری به تو فروخته بودین. چرا این بلا رو سر خانواده ما آوردی؟ آخه ما تو رو چیکار کرده بودیم؟ چرا بچه‌مو چه من فقط واش دعوا کردم. اصلا که اونجا زدم نیرو اصلا برنگاشتم ما این سرا. اینی که داری میگی. من می‌خوام بفهم تو اصلا کی هستی. چرا می‌خواستی انتقام بگیری؟ اصلاً چرا از ما بخواستی انتقام بگیری؟ من پسر کازمم کازم, کازم بود ارزی میشنسیش؟ کازمی بود ارزی؟ نه... نمیشتاسم درد من هم همینه. توی خونه آدار رو به خاک سیاه نشوندی باید خود زمان نهدی ببینی اصلاً کیم آزار من به یک مبشه نرسیده بچه چه چر برسه به آدم چرتو پرت تحویل من ندهی؟ چرتو پرت نیست و شریکت من مغازه رو آتیش نزدین ما که پول بگیره نبیمه بیمه. اداش کی شدی؟ زدی یا نزدین؟ کار من نبود. این کار کار شریکم بود. وقتی دینو دارین کار میکنی هاجره بابای منو حتماً منکر میشه. این کار به بابای تو چه رابطه داشت؟ شریک من مغازه ما رو آتیش زده بود. به تو چه مربوطه؟ مغازه شما تو بازار بود درسته بله. یه دکون بود کنار مغازتون که همیشه خالی بود. اون اسم این نبود اسم کس دیگه ای بود بله ولی پدر من جنساشو موقعت گذاشته بود اینجا جنسایی که با هزار جوغ ارز و بول خریده بود آتیشی که شما برا کردین همه رو سوزوند من اصلا یادم نمیاد باست اینکه حواستون به کار خودتون بود دنبال پول گرفتن بیمه بود ما حواستون به کار خودمون بود بابای تو چرا نیومده دایی خسارت بکنه خسارت چه بگیره مبای من فرصت نکرد. آخم رو شنید سکته کرد مرد من پنج سالم بود بابام جل چشم جون داد انقدر بچه بودم فکر میکردم خوابیده بعد چند ساعت مادرم رو بیرون برگشت و یک کارکار بذاشته بود ها پهی سالگی یتیم شدم اینجا خبر اینکیزا نداره آلم آدم میدونستن جد شما شما به نفتون نبود خبر داشته باشید چونگه میدونستین بعد میونیم به من و ماندنان زرار زیام میدادین بعد معلوم میشد ماجر و روزی تو بوده بعد معلوم میشد بابای من و شما کشتی میدونی آدم بابا شروع چشش بمیره یعنی چی؟ یه عمر با کیمه و حسرت بزرگ شدم بسن که یه روز از اتقام بگیرم چرا نایمدی سراغ خود من چرا سراغ پسر من چرا اون رو کشتیش من نکشتمش بگرفتم هستو نیستش و چنگیش در بیارم تو تو هستو نیستم و چنگیم تو قاتل پسر منی دروغ بگی تو دروغ میگی خاطر آقای تویی لوله اینه کشتی قرار بود گذاشتی این چه کاری میکردی؟ بابا تو رو هم رو در روش کردی حق نمیشه چی بکنه این کارو. کدیمون نیست، کدیمون نیست. یک پولی گذاشت، شنیدی این شرکت هر روز پا مشمیل اینجا؟ من مخاطر خودم نه مهمی. آرش تو دارد سرفصل. نمیخوام یه نگرانم کاری زندگی باشه. چی تفاقی افتاد؟ من مطمئنم شما میدونین چه اتفاقی افتاد. میخوام یه نفره به هد مار چرا؟ باید. باید. باید. باید تو؟ آروم با. تو نمیتونی هماره نگران کردی چرا نمیگی مچکده تو فستیبه شریفی رو از کجا میشناسی؟